رخداد نادرستی نظری های نژادی، هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی، با نام و یاد حضرت حقتالا با عرض سلام و عدب احترام خدمت شنوندگان گرامی همراهان صدای امید برنامه رخداد ما در شش قسمت گذشته مباحث کلی و شاید هم بدیهی در خدمت بینندگان عزیز بودیم و ساختار هستی رو بحث کردیم و شنوندگان رو تشویق کردیم برای مطالعه در این باب و مطالعه در باب چگونی تشکیل کائنات و همینا اومدیم اومدیم به کره زمین و آروم آروم رسیدیم به مرحله ای که طبق نظریه داروین اول جلو بریم و نظریه داروین رو طرح مسئله بکنیم و به اضافه اینکه شروع نقد نظریه داروین رو انجام بدیم در شش قسمت گذشته احتمالا یه سری ابهاماتی بوده و قطعا اونها هم مطرح خواهد شد و در قسمت‌های بعدی هم قطعاً ابهاماتی خواهد بود شنوندهان عزیز از طریق ایمیل info@sedaieomid.com امیدواریم که انتقادات نقدها و همچنین ابهاماتی که دارن اونها رو مطرح کنن و مثل شش برنامه گذاشتن این قسمت هفته هم در قدمت جناب آقای ایران مهر هستیم جناب آقای ایران مهر سمنه سلام که با شنواندگان این میفرمایید اگه ابهاماتی در بحث های گذاشته هستش بفرمایید و با همدیگه وارد مبحث بشیم خواهش میکنم درود بر شما آقای محبی شنوندگان گرامی و گردانندگان برنامه صدای امید شش نشسته و شش بخش گذشته همینطور که آقای دکتر محبی گفتند در باب بیشتر پیشگفتارها و مقدمات گذشت آقای قولی از گردانندگان برنامه گرفتیم که بتونیم اون مسئله سه بخش نخست که درباره هستی بود رو به صورت خطی بیاریم جلو و از زمان پیدایش پستانداران تا انسان نوین رو به صورت رفت و برگشت بتونیم هر جا که ابهامی بود برگردیم، مطرح کنیم، اون گره رو تا جایی جای که امکان داره باز کنیم و دوباره بیایم به زمان حال اونها در بخشهای آینده ریز به ریز به اون مباحث خواهیم پرداخت بدون اینکه وارد مباحث تخصصی دانش ها و علوم مختلف بشیم اما یک ابهامی شاید برای بنده پیش اومد شاید گمان کنم در بخش پنجم شنوندگان اینو شنیده باشند. ما زمینی که اینو بحث میکنیم چون نظریه هایی که در غرب مطرح شده درباره زیست انسان حیات انسان تکاملش و تا به امروز صورت بندی هویت که انجام شده اصولا شکل غربی داره از دیده جوانان نوگرای ایرانی بخششون اینا با ابهام هایی رو برس بنابراین من دو تا رو میخواستم از دکتر مهدی مطرح کنم این رو تا جایی که میشه یکم باستر توضیح بدن. آیا دکتر مهدی فرمودن که ایران دوچار یک نوع گرفتار شدن به متن یعنی فضای زندگی ایرانیان یعنی متن در اون بیشتر دیده میشه و یک بحث دیگه درباره انقطاع تاریخ علمی مطرح کردند که گفت یعنی اینطور شاید من برداشت کردم که در ایران شاهد انقطاع تاریخ علمی بودیم یا و اینکه در قرب آیا چنین چیزی نبوده اونجا چطور چگونه دانش رشد کرده روند رشد دانش به چه صورت بوده این یک مقاسه مقیسه انجام بشه پرسشی که مطرح میشه که این انقطاع رو ما یعنی این افول رو در واقع در کشورمون از زمان شخص بنده برای پرسشی که از زمان استعمار بوده که شاید هستیم یعنی این متنگرائی این انقطاع تاریخ علمی اینو در گذشته هم شاهد بودیم یعنی مثلا بیرونی و پورسینام هم دوچار همین معضلات بودند یا ما امروز به خاطر گرفتار شدن به 300 سال استعمار اروپاییه که دوچار این وضع امروز شدیم سپاسگزار میشم که دکتر مویبی یک توضیح روشنگری در این با باره ب سوالات خیلی جالب و در این حال بسیار جامعی هستند و بحث مستفا و بحث بسیار وسیعی رو میطلبه یکی در مورد متن کردم بله منظور بنده از متن گرایی دلالت داره بر نوع تحقیق و متدولوژی تحقیق هستش که اون هم در کل دنیا سابقه 150 ساله داره میدونید که اصلا متدولوژی روش تحقیق و روش علمی از پوزیتیویسم اومد بله واس پوزیتیویسمه که اومد گفت که ما هم ترکه در واقع تو برنامه این گذشته عرض کردم که جهان قاعده داره و قواید جهان قابل شناسایین و این جوا... قواید قابل شناس قابل دستکارین حتی نه تنها در علوم طبیعیه طبی که ثابت شد روز سقر قبل از اون گفتم ما تو اونو انسانی هم میتونیم این قواید قابل پیش بینی رو شناسایی کنیم و همچنین بی... میتونیم اینها رو دستکاری بکنیم یا در جوامع دستکاری بکنیم جوامع اگه مثلا یه جوامع مثلا ا تو دای هستن اون رو مدنی بکن میتونیم می مدنی بکنیم یا جوامعی هستن که مثلا نیل به استبداد دارن اونا رو دموکراتیک بکنیم خب بدون اینکه روندی طی بشه بدون اینکه مثلا نسل ها تغییر بکنه ما همون نظریه ای که ما الان تو اوایل قرن 21م داشتیم و یه سری افراد فکر کردن که مثلا با توپ و تانک و با با ناو هواپیما میشه دموکراسی رو یه جایی برد که و دیدیم که چه فاجعه ای و الان فاجعه رو داریم میبینیم متن گرایی بله در تاریخ ایران چون آشنایی ما با علوم غربی هم از طریق ترجمه بوده و مترجمین ما هم در واقع درست ترجمه نکردند و زبان فارسی هم حالا شاید اینجا یکم این بحث حساس باشه امیدوارم خصوصا ملی گرایان و کسانی که همه ما در واقع دل در گروه ایران آباد آزاد داریم ولی زبان فارسی متاسفانه خصوصا تو این دو سه قرن اخیر قدرت تولید فلسفه رو از دست داده ببینید شاید ما بیایم توی فرهنگستان زبان فارسی بیایم مثلا یه سری واژه تولید کنیم برای یک سری چیزا مثلا به هلیکوپتر بگیم مثلا در بالگرد. بالگرد یا مثلا به یارانه برای سوبسید بگیم یارانه برای کامپیوتر بگیم رایانه ببینید اینها فی چیز بدی نیست ولی باید بدونیم که زبان و تولید متن برگرفته از یک تمدنه ما مثلا یه مثال عرض می‌کنم یه تمدنی که میاد کامپیوتر رو تولید میکنه کامپیوتر 6700 قطعه داره و قطعا برای تک تک قطعات لفظ تولید میکنه کلمه تولید کنه از زبان خودشم کلمه تولید میکنه چون بسیاری از اصطلاحاتی که ما توی کامپیوتر داریم، اصطلاحاتی که توی اینترنت هست، اصطلاحاتی که مثلا در مورد شبکه‌های اجتماعی هست. انگلیسی اصطلاحات انگلیسیه نه از نوع آنگلوساکسونی، آنگلیکانی و بریتیش، از نوع آمریکایی‌ش هم هست حتی. چون چون که اون تمدن بوده که چنین چیز رو تولید کرده و براش واژه‌ام تولید کرده و براش کلمه هم تولید کرده. متن گرایی در تاریخ ایران و معاصر برگرفته از همون افول تمدن توی ایران هستش که ما تو دوری قاجاری به اوجش می‌رسیم هیچ چیزی عملاً عملاً تو ایران چیزی حتما تولید علم نداشتیم عملاً نداشتیم و همش ترجمه بوده و به ترجمه‌ها هم نگاه متن گرایانه داشتن و هیچ وقت نمیدونستن که اون چیزی که میاد در واقع یه جای دیگه تجربه شده کانتکس اون متن رو ندیدن اون متن رو ندیدن مثلا یک تحقیق جالبی از جنابهای دکتر عباس میلانی من دیدم یک مجموع مقالاتش از تحت دومان تجدد بسطوری ستیزی در ایران مثلا میگه که ما تو ایران مثلا کارگر داشتیم ولی مثلا تو ایران معاصر یهت مترجمین مارکسیست اومدن مثلا کلمه پرولتاریا رو آوردن آخه در چیزی به به پرولتاریا ما تو ایران نداریم پرولتاریا به کارگر صنعتی معمولاً اطلاق میشه ما اساساً صنعتی نداشیم که کارگر صنعتی داشته باشیم یا مثلا بورژوازی یا مثلا فئودالیسم فئودالیسم اون به اون شکلی که توی اروپا در واقع تجربه شد تو ایران تجربه نشده فئودالیستی که مثلا یه شخص به ما سیستم سرواش که یک شخصی میاد به طور کامل یک رو میخره افراد رو هم میخره در حالی که ما چنین سیستم ظالمانهی نداشتیم ما سیستم نهاره, عرباب داشتیم ولی بیشتر حالت همکاری بود و بیشتر حالت اشتراکی بود اشتراک در زمین و در واقع تولید بوده به این شکل شما الان شما برید تو روستاهای مختلف مثلا تو روستاهای که مثلا سیستم عرباب مثلا تو این نیم قرن اخیر توش در واقع منسوخ شده هنوزم او اربابای قدیم فرزندان و اربابای قدیم مورد احترام مردم هستن برایشون احترام میذارن و حتی من تو خود شهرستان و خودمونم افرادی رو میشناسم طرف خیلی سرمایهدارم هست از لحاظ مالی از لحاظ در واقع تحصیلات دانشگاهیم خیلی بالاتر از مثلا طرف مقابل هست و اون طرف مقابل که فرزند یک بیک بوده یا خان بوده بهش احترام میذاره یه حالتی بوده که این به این شک نبوده که مثل فودالیسم اون دوره باشه. لذا تو این متن گرایی معمولا وقتی که مترجمین ما اومدن این متن‌ها رو ترجمه کردن به اون سیستمی که اونجا تراحی شده بود این واجه ها اونجا ساخته شده به اون توجه نکردن. لذا متن توی ایران فرمودید که مال همین دست بله. دقیقاً مال همین 100 سال اخیر ما قبلا اینجوری نبودیم. ما قبلا مثلا ابن سینا بله قبلا مثلا ابن سینا وقتی می اومد متن مثلا ما بعد طبیعه رو میخوند اصلا هم تکسچوال میکرد هم کانتکسچوال و هم انتر میکرد یعنی اصلا باهاش دکترین میساخت فکر تولید میکرد با. یعنی بیرونی میومد مثلا از جالینوس و در واقع عرض به حضورتون از بغراتین ها محتمی تولید اینو بروز میکرد ما دویس سال دیگه حکیم نداریم تقریباً, تقریبا تقریبا ما نداریم واقعا واقعا نداریم تحقیق گفتم و... تقریبا البته نم. میگم این حالا از اینجا ما شیفت کنیم به قسمت دوم سوالتون انقطا انقطاشمون دلیلم همینه شما مثلا وقتی ابن سینا رو ما میایم تمدن ما بعد از حمله عرب بعد 400 سال بود 350 سال میاد یه سری نخبه های تولید میکنه فارابی و ابن سینا چیزای کمی نیستن هنوز دوباره هم... بله دوباره میاد تولید میکنه این شخصیت چه چنین نخبهی رو تولید میکنه ولی اون سال بعد از ابن سینا توی قرب رونسانس به وجود میاد علمی به وجود میاد به اسم متدولوژی. یه قرب نمیاد یه ابن سینای بزرگ بسازه میاد علم رو خورد میکنه خب علم رو میاد خورد میکنه و به جای یک ابن سینا هزار تا ابن سینای کوچیک میسازه لذا خورد شدن علم هنوز هم جایی نیفتده. هنوز که هنوز ما به علامه های خودمون افتخار میکنیم. هنوز که هنوز ما به افرادی که تو علوم مختلف مثلا جامول اطرافان اطراف این اصلا افتخار نداره علم اونقدر ریز شده اونقدر ریز شده که باید انسان ها برن در واقع ریز اون ریزون ها بپرزان ما مثلا وقتی که میگم مثلا داره این نسل مثلا بزرگانی مثل مثلا مرحوم دکتر عباس زریاب خویی که معروف بود به دایرات المعارف متحرک که در چندین علم در تاریخ در ادبیات در فقه در مختلف تبهر داشت نظر ته ذهن ما ایرانی ها هنوز هم ذهن ابن سینا گرایی ما فکر میکنیم با علم اون موقع ابن سینا برای اون موقع بوده افتخارش هم برای همون موقع است دیگه ما نمیتونیم یه شخصی مثل ابن چون چون ابن سینا تا 18 سالگی تمام علوم زمان خودش رو یاد گرفته بود که علم همون حد بود هم فلسفه هم پزشکی هم در واقع منطق همه اونم زمان خودش یاد گرفت و هم حفظ کرد دیگه چیزی دیگه بعد از 18 سال که چیزی به اون علم اضافه نشد بلکه اون رو گسترش داد و در واقع تبیین کرد و تحلیل کرد و تعویل کرد و تفسیر کرد ولی الان دلیل این هایی که ما داریم چون چون که روش رو تغییر ندادیم متدولوژی خودمون رو در واقع تغییر ندادیم ولی توی قلب اینجوری نیست توی غرب بله ممکنه در یک تفکر خاصی در یک برهی خاصی انقطاع در مورد اون تفکر ولی توی خود علم خود مقوله علم انقطاعی صورت نگرفته یعنی هر کسی اومده تکمیل کرده مثلا بعد از کپلر و 1700 کپلر بله سال نجوم بطلمیوسی حاکم بود فلسفه هم برگرفته از همون نجوم بود ولی بعد از کپلر و کپرنیک میان اونو تکمیل میکنن بعد گالیله میاد تکمیل میکنه در کنار اون بیکن و دکارت هم میان فلسفه رو فلسفه مثلا مسیحیت رو در واقع میان تکمیل میکنه در واقع این قطعه اینجا صورت نمیگیره به دنبال اون میان کاری رو که و انجام دادن اونها میان ادامه میدن در واقع این قطعه اینجا صورت نمیگیره باز بله. کنم که از اتاق فرمان بهمون به در واقع <تصفيق> میدن که یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان قسمت هفتم ما تو این قسمت چون توی ابهامات با... ابهامات دیگه ایگه مونده ما تو قسمت هشتم بازم باز هم بهش خواهیم پرداخت بله. چون ما نمیخوایم من ابهام بمونیم از بحث خارج بشیم بگر, بگر نه از بحث اصلیمون درست خب ولی خب فکر کنم تو برنامه آینده دیگه وارد نقد جریان های اصلی که بر علیه نظریه داروی و نظریه تکامل هستش بپردازیم و همینجا شنوندگان گرامی رو به خداوند بزرگ و متعال بسپاریم زنده بس